کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد محقق است که او حاصل بسر دارد چو خامه در ره فرمان او سر طاعت نهادین مگر او به تیغ بردارد کسی به وصل تو چون شم یافت پروانه ز زیر تیغ تو هر دم سری دگردارد به پای بوس تو دست کسی رسی که او چاستانه بدین در همیشه سرد سر آورد ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب که بوی باده مدامم دماغ تر دارد زباده هیچت اگر نیست این نبست که تو را دمیز وسوسه ی عقل بی خبر دارد. کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد به عزم می اکنون ره سفر دارد. دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد چلال داغ هوایی که بر جگر دارد